بخش دوم به این نخستین ملاقات با مارگریتا هم اتاق من در زندان موقت زیاد اهمیت میداد. به این اولین دیدار که او را از جمود روزانی زندگی به حرکت کشاند و به آن آخرین ملاقات که زندگی برای او معنی و مقصدی پیدا کرد. آخرین دفعه که به او فریاد زده بود مارگریتا مارگریتا به هیچ کس نگویی به هیچ کس شاید آخرین دیداران روز نبوده، شاید دیروز صبح هم که از زندان بیرون میرفته است، دم در زندان، همان جایی که اتومبیل ها و پاسبان ها، کسان زندانیان را می‌تارانند که مباده با آنها حرفی بزنند، شاید دم در زندان او را دیده است، شاید هم یک دفعه دیگر مارگریتا نش او را دیده است، این آخرین ملاقات را مرتزا دیگر نمی حکایت کنه. اما ملاقات اول خودش را برای من تعریف کرد تمام احساسات و لذتهایی را که برده استراب و تپش دلی که برایش دست داده بود همه را برای من گفته است ای کاش می توانستم این کلمات او را اینجا تکرار کنم شاید همون تأثیری که در من کرده است و یا اقلن سایه ای از آن اینجا بیفتد تا معلوم شود که زندگی به زندگی دردها، چطور آدم را شاعر و هنرمند می کند مرتزا آدم ای بود آدم کمرویی بود اما زندگی او را شاعر کرده بود فرقی نمی کند. همین دزد بوگندو که الان پیش پای من روی زمین خابیده و خرخور میکند، هم مرتزا فه زندانی محکوم به مرگ که دیگر نیست هم مارگریتا که زیر کوی از درد و شکنجه می و دم نمیزند. هم من که در این نیمه شب دزدکین یا داشتها را روی کاغذ پاره می و هر آن گوش بزنگم که صدای نعلهای چکمه روی سمنت دالان بند شش نزدیک به اتاق ما نشود و صدای چکاچک کلیدهای کلید داره فلک ورود پایور و یا بازرسی را ابلاغ نکند فرق نمی کند. همه ماها وقتی زیر یوغ شکنجه زندگی افتادیم مجبور هستیم دست و پا بزنیم فریاد کنیم و همین وسیله بروز احساسات ماست همین خونی است که از جگر ما ریخته می شود همین پارههایی از روح ماست که به این شکل تجلی می کند موضوع این است که دردها و شادمانیهای خودمان را به هر راهی که هست بیان کنیم اما درد کشیده بهتر پی به درد دیگران میبرد من وقتی که فکر میکنم که چهار سال است محتاب را مشبک دیدم محتاب را از میان میله آهنی تماشا کردم من وقتی میبینم این دوست که در هر نفسی و در هر خورخوری مقداری بوی گند در هوا پراکنده می کند با وجود ده هزار و پنجاه هزار و یا ست هزار تومان دزدی از مال رنج بران و زحمت ایران چند روز دیگر مرخص و یا عف می شود و برای من هنوز چندین سال همین شبکه ما و همین خورخور خور و همین بوی گند و همین چکاچک کلید و همین ضربت چکمه و در بدترین مواقع شلاق و فرش و بعد هم تبعید خواهد بود آن وقت طبیعی است که تأثیر تشریح دنس مکبره مرتزا ولو آنکه کلمات او نارسا و غیر شاعرانه هستند در من بیشتر است و احساسات تند و خوی آتشین من تمام دنیا را دست کم دنیای مرا به شکل رخص استخانهای مردگان میبیند آه مرده ها را من می پرستم و دوستشان دارم. بیخود اشاره به این مطلب کردم. مرتزا بهتر از من بیان می کند. یک ربعه ساعت طول کشید تا من از مدرسه سوار دره شدم و خود را به خانه آنها رساندم. خانه آنها در خیابان نادری بود. وارد حیات که می شدی، دست چپ راه پلکان به ایوانی منتهی می شد. و از آنجا داخل اتاقی می شدی که پنجره هایش رو به ایوان باز می شد. کلفتشان بدون اینکه ورود مرا اطلاع دهد، مرا به اتاق کوچکی برد. در وسط اتاق میز بزرگ و کوتاه گردی بود و روی آن کاغذ چیده بودند. سر میز یک نفر عاقل مرد و یک دختر جوان و آشنای من رجبوف نشسته بودند. به محض ورود من رجبوف گفت آها، این آقای مرتضافه است بفرمایید تشریف بیاوری تو این طرز پذیرایی کاملا برخلاف میل من بود من خیال می کردم به خانه یک نفر ایرانی وارد می مرا به اتاق مهمانی می برند و بعد کسی می آید و با من صحبت می کند و یا اینکه در بیرونی منتظر می شوم. در هر صورت خیال نمی کردم که مرا را به سر میز غذاخوری خوری می از ریافه پدر مرگریتا معلوم بود که در چنین موقعی منتظر من نبوده است یعنی شاید فراموش کرده بود که چنین کسی قرار است بیاید و به دخترش درس بدهد در خاطرش میگشت که من کیستم میخواست با من حرفی بزند و نمیدانست چه بگوید صدای ملوس مارگریتا مثل جرنگ نقره‌ای که روی سنگ بیفتد تنین انداز شد بابیجان، جان این همان آقایی است که میخواهد پیش من روسیات بگیرد مارگریتا چند ثانیه‌ای به من نگاه کرد از جایش بلند شد و خندید خندش مثل آفتابی بود که از زیر ابر سر درآورد و دنیا را شاد و خرم کنند چند تار از موهایش مثل ابریشم زرندود در هوا می لغزید اندام میان باریکش که در کمربند پهنی بلند تر به نظر می معجزه تناسب بود چه خنده لطیفی داشت مرا مسخره نمیکرد. نه مرا مسخره نکرد سر تا پای مرا برانداز میکرد. من کیف و دست چرمی را در دستم گرفته بودم کلاه و پالتو را بیرون روی نیمکتی در ایوان گذاشته بودم. دست راستم آزاد برای دست دادن بود و شاید خنده شادی بخش مرگریتا بیشتر به کیف زرد چرمی بزرگی بود که انتظار آن را داشت. میترسیدم زیاد به او نگاه کنم. میترسیدم که آتش او مرا بسوزاند. نگاهم را به نقاشی نسبتاً بزرگی که به دیوار آویزان بود دوخته بودم برای اینکه خجالت میکشیدم و فکر میکردم که چگونه خود را از هچلی که گرفتارش شدم نجات دهم فقط این جمله به فکرم رسید. ببخشید من حتما بیمقع آمدم میروم و وقت دیگر خواهم آمد ببخشید. اواخر زمستان بود و پرتغال روی میزشیده بودند. گفتم و منتظر نشدم فقط وقتی از پله پایین می رفتم شنیدم که پدر مارگریتا می گفت بفرمایید چه مانعی دارد تشریف داشته باشید اقلن یک پرتغال میل بفرمایید من وارد حیات شدم کلفت دم در ایستاده بود در را باز کرد که من از حیات خارج شوم. مارگریتا مثل برق از پله دوید پایین و دم در به من رسید و گفت کی تشریف می صحبت کنیم زنگ صدایش مثل آهنگ سکه نخره بود موهای پرپشت بلندش تا روی شانه آویزان بود و از دو طرف گوشش ماننده دو طره پیچ در پیچ به بلندی دستهایش تاب می‌خورد. خورد چشمهای کبودش مثل چشم گربه می درخشید. در عمرم دختری به این خوشگلی ندیده بودم دهانش مانند دهان قنچه گل لاله بود که تازه میخواهد باز شود عطر نزده بود بزکی نداشت لبهایش سرخ گونههایش با تراوت پوستش مثل مخمل خوابدار بود و بوی خوشی که از او تراوش میکرد. مرا گیج کرده بود خیس عرق شدم زبانم بند آمد ته افتادم آمده بودم برای درس روسی میدانم کی مییید صحبت کنیم؟ آ آ آمده بودم با هم قرار بگذاریم پس چرا فرار میکن؟ بفرمایید بالا قرارش رو بگذاریم من سرخ شدم فهمید که من دیگر خجالت میکشم دو مرتبه بالا بیایم کی وقت دارید؟ من همیشه وقت دارم. صدای روشنش مثل موزیک در من عوالم افسانه جلوه میداد. امشب ساعت هفت تشریف بیاورید. بعد دست مرا گرفت، بلند خندید و من از خانه بیرون رفتم. بی اختیار وقتی وارد کوچه شدم، شست و انگشت اشاره‌ام را به هم میمانیدم که آیا هنوز گرمی کف دست صاف و نازک او را احساس می کنم یا نه من این منظره یه در را فراموش نمی کنم و هرگز فراموشم نخواهد شد شاید چند روز دیگر مرتزه وقتی راجب خود مارگریتا صحبت می کرد دیگر خود را در زندان و در بند شش نمی دید ندیده میگرفت و گویی خاطرات گذشته را برای خودش تکرار میکرد. من یقین دارم وقتی راجب مرگریتا صحبت میکرد، واقعا زلفهای زرندود مارگریتا را احساس میکرد. گاهی چند دقیقه حرف نمیزد. آن وقت اگر هنوز خود را در عالم توهم میدید ادامه میداد و یا اینکه می میگفت. چه فایده دارد؟ زندگی چقدر شیرین و چقدر تلخ است؟ چقدر تلخ است؟ باشد. دفعه دیگر برای تن تعریف میکنم. آن وقت من منتظر فرصت بودم. در زمستان ما را ساعت چهار و نیم می بردن توی اتاق. روزی پنج ساعت دست بالا هواخوری داشتیم. آنجا در حالی که یکی شپش می کشت. یکی زیر شلواریش را به پنجره آویزان کرده بود. یکی خمیازه میکشید دیگری ابو عطا خاند. آن یکی جورابش را وصله می کرد. آن وقت من جرعت نمی کردم از او خواهش کنم که بهترین احساساتش را برای من تشریح کند و منتظر بودم تا باز در ضمن هواخوری اگر ما را تفتیش نمی کردند اگر گرد و خاک در اثر تکان دادن اسبابهای زندانیان اجازه می داد اگر پاسبان تازهی برای یک دستگاه چای موی دماغ نمی شد فرصتی به دست بیاوریم و او حوصله آن را داشته باشد تا برای من گذشته بدبختی خود را تعریف کند آن شب من ساعت هفت رفتم نمیدانم به چه جهت با وجود این آن روز کار زیاد داشتم ساعت پنج به خانه رفتم و خود را مثل بچه ها که می به میهمانی بروند حاضر کردم با وجودی که صبح صورتم را تراشیده بودم باز بعد از ظهر از نو تراشیدم لباس خاکستری که خیلی خوب دوخته شده بود تنم کردم. کاروات خاکستری با خالهای گلی بستم. پالتوی تنگی که آن وقت بود پوشیدم و سوار درشکه شدم. در تای تمام راه دلم می تبید. هزار گونه فکر شیرین برایم دست داد. آتیه درخشانی را جلوی ششمانم می دیدم اما خودم باور نمی کردم. گاهی زیبایی اندام و لطافت پوست مارگریتا را به یاد می آوردم. آن وقت می گفتم، نه غیر ممکن است. گاهی یاد خنده او میافتادم و صدای تنین اندازش را می شنیدم. آن وقت می گفتم، مرا ریشخند خند می کند. برای چه اصرار داشت که من نه همین امروز بیایم، برای چه؟ برای اینکه می خواست پیش من فرانسه یاد بگیرد. خودم نمی چه می خواهم. اما تمام این تفکرات شیرین بود. چند دقیقه قبل از ساعت هفت دم در خانه پیاده شدم. بعد یک مرتبه دلم توب توب کرد. فکر کردم که آنها حتما خواهند فهمید که من محض خاطر رفتن آنجا خودم را بزک کردم. با دستمال پودر صورتم را پاک کردم. موهایم را با دستم پریشان کردم که معلوم نشود تازه شانه کردم. خوب نیست آنها بفهمند که من مخصوصاً برای ملاقات آنها خودم را آماده کردم. میخواستم کفشهایم را هم کمی خاکی کنم که یک مرتبه در خانه ای باز شد. من به خیال اینکه در خانه آنهاست رنگم پرید ولی خوشبختانه در خانه همسایه بود. زنگ زدم. کلفتشان در را باز کرد. به محض اینکه وارد حیات شدم، پدرش که در ایوان ایستاده بود، از پله‌ها پایین آمد و به من گفت بفرمایید، بفرمایید بالا، با دختر من قدری صحبت کنید، از آن شام حاضر می شود لحجهش ترکی بود و قلیز من گفتم متشکرم اما من شام خوردم بفرمایید بالا، خانه ما هر کس باید شام میل کند، میخواستید شام نخورید گفت و مرا روانه کرد من وارد اتاق شدم میز بزرگی در وسط آن بود چراغ برغ از سقف بالای میز آویزان بود چتر نابی تیر رنگی با شرابه های آن را احاطه کرده بود اتاق نیم روشن بود پرده های و سنگینی بالای پنجره های روبه هیات را پوشانده بود در گوشه چپ دور از ایوان پیانوی بزرگی بود و پهلویان یک طرف گرامافون و طرف دیگر دستگاه رادیو بود مارگریتا لباس آبی کمرنگی با یخه چینچینی بزرگی که وسط آن روی سینه‌اش بند عنابی شکل پروانه گره خورده بود تن داشت نمیدانم نور چراغ بود یا تاثیر چتر عنابی آن یا سوزش سرخ بخاری نفتی یا پردههای سنگین یا رنگ سیاه پیانو در هر صورت مارگریتا رنگ پریده به نظر من آمد نه اینکه های او گلی نبود ولی مثل اینکه به نظر من این مارگریتا هزار برابر زیباتر از زهر شده بود این طرف پیانو مارفینکا ایستاده بود مارفینکا دوست مارگریتا بود. آنها با هم روسی صحبت می کردند. او دختر یک نفر روسی بود که در ایران متولد شده بود. پدرش مرده بود. پیش مادرش که با یک نفر ایرانی ازدواج کرده بود زندگی می کرد. وقتی من وارد اتاق شدم، مرگریتا یک دست نوت پیانو را رو از روی صندلی برداشت و روی میز کوچک کنار پیانو گذارد. خوب سر وقت آمدید، دوست مرا نمی مدمزل مرفینکا اول خودش دست مرا فشار داد بعد من با مرفینکا دست دادم آن وقت مارفینکا خدا حافظی کرد و رفت و من با مارگریتا در اتاق تنها ماندم ما اول شام میخوریم بعد راجب کار من صحبت میکنیم من شام خوردم حیب ندارد کمی با ما کمک کنید. شام هم منتظریم که آقای رجب بیاید چند کلمه صحبت میکرد. بعد با کمال سادگی به من نگاه میکرد و منتظر جواب من بود. همیشه دیر میآید بهتر. میگفت و میخندید. صدایش اصلا خندان بود. مثل آهنگهایی که از تار بیرون میاید. مدتی در هوا می لرزید می گفت و اصلا منتظر نمی شد که من جواب بدم چرا شما آنقدر محجوب هستید بابی آدم خوبی است با او می توانید رفیق شوید سنش از پنجاه بیشتر نیست اما روحش جوان است بیچاره همیشه ناخش است و عصبانی است خوشم نمی آید که عصای کلاف دستش می گیرد چند سال دارید منتظر جواب من بود ولی من نمیدانستم او را چه خطاب کنم اگر اسم فارسی داشت به آسانی میشد گفت اختر و یا پروانه خانوم اما مارگریتا خانوم سنگین به گوش میآمد مادمازل هم جور در نمیآمد برای اینکه ما فارسی حرف میزنیم ولی باز بهتر بود من بیست سال دارم مادمادمزل به من مادمازل نگویید خیلی رسمی می شود هر وقت فرانسه یاد گرفتم آن وقت با شما فرانسه صحبت می کنم و بعد می توانید به من مادمازل بگویید خوب ترفاز کردم من کمی فرانسه پیش خودم خانده اما حالا شما به من خوب یاد خواهید داد من روسی خوب بلدم مادرم روسی بوده است. یعنی هنوز هم هست آن وقت رفت به طرف گوشه اتاق و از زیر میز آلوامی بیرون آورد گفت بفرمایید اینجا من عکسش رو میخواهم به شما نشان بدم. ببینید چقدر خوشگل است. نمیدانم الان کجاست. در ایران نیست ولی من او را خیلی دوست دارم. در اتاق خودم عکس بزرگی از مادرم است. حیف که من پیش او نیستم. من عکس را از دست او گرفتم و آن را نگاه کردم. راست می گفت. زن بسیار خوشگلی بود اما من ترس برم داشت. مبادا بخواهد که اتاق خوابش رو به من نشان دهد؟ گفتم: روی همین عکس هم معلوم است که زن بسیار زیبایی است. هنوز هم گاهی به من کاغذ می نویزد. پدرم را خیلی دوست داشته است. همیشه به من سفارش می کند که. به او باشم دلم میخواست از او بپرسم که علت جدایی آنها چیست ولی جرأت نکردم مرگریتا صحبتش را ادامه داد اما خیال نکنید که روسی یادم رفته است من هر روز یکی دو ساعت به روسی صافت میکنم من پرسیدم با کی؟ با مارفینکا ما با هم خیلی رفیق هستیم، با هم موزیک میزنیم، چهار دستی روی پیانو میزنیم. یک شب اگر بخواهید، او را دعوت میکنم و برای شما با هم موزیک میزنیم. بسیار دختر خوبی است میگفت و میخندید و گاهی هم متوجه من میشد و چیزی راجب من میگفت و از من میپرسید. شما دوست دارید کتاب بخوانید و یا اینکه؟ از نویسندگان روسی که را رو از همه بیشتر دوست دارید؟ و یا اینکه من عاشق پشکین هستم. او بیش از هر کسی به احتیاجات و یادم آدم پی میبرد. من تعجب میکردم از اینکه این دختر به این ملوسی چرا اسم درد و احتیاجات میبرد. باز میگفت و میخندید. مثل اینکه فکر نکرده حرف میزند. گرمتا نیست میخوایید به چراغ را کمی پایین تر بکشیم؟ من گرمم نبود. بالاخره نکفتید که موزیک را دوست دارید یا نه؟ من البته موزیک دوست داشتم. اگر میخوایید برای بزنم اما صبر کنیم بعد از شام. رجع بف موزیک دوست ندارد. با پدرم شطرنج بازی میکند. به شرط اینکه که عرق نخورده باشد. آن وقت من برای شما پیانو میزنم. چجور موزیک دوست دارید؟ اما گاهی هم منتظر جواب من نمی شد می خندید و ادامه می داد. من در افسونی که از او بر من می تابید. فرو رفته بودم حرکت های باریک و لطیف او را تماشا می کردم من غرق در این فراوانی سرشار و زیبایی بودم من آهنگ پر از شور کلمات او را می مگیدم. من گرما و نوری را که از پوست او تراوش میکرد میبوییدم من لذت زیبایی را میچشیدم مستی فراوان گسستگی بارفتگی در خود احساس میکردم من وارد دنیای دازهی شده بودم بیرون دنیای همگان بیرون دنیای من بیرون دنیای روزانه و یک نواخت در این دنیا امید و آرزو وجود داشت، در این دنیا آدم نمی دانست که فردا چه اتفاق خواهد افتاد، در این دنیا آدم حسرت می کشید. در این دنیا آدم درد می به امید آن که در پیان لذت وجود دارد، چرا مارگریتا می خندهد، من رو مسخره می کند، شاید مسخره نیست، شاید از من خوشش آمده، شاید ما با هم دوست خواهیم شد، شاید روزی کمی، ذرهی، مرا دوست خواهد داشت. آن وقت تمام زندگی من مال او، تمام هستی من فدای او. چه شیرین صحبت می کرد؟ من جرأت نمی کردم از او چیزی بپرسم، اما بعدوی خودم فکر می کردم مارگریتا، تو راجب من چه فکر می کنی؟ زیبایی زندگی در همین ندانستگی است. در همین امید که فردا بهتر خواهد شد دنیا آرامتر زیباتر خواهد شد آن وقت پدرش آمد آقای فه هیچ حرف نمیزند همش من صحبت کردم خب ماری چرا زیاد حرف زدی میخواستی آرام باشی آن وقت آقای فه صحبت میکرد آن وقت پدرش رو کرد به من شما دبیر هستید؟ بله چند سال هستدریز میکنید و ما با هم انطوری که دو مرد با هم صحبت میکنند صحبت کردیم بعد و آمد و ما سر شام و بعد از شام باز صحبت کردیم راجب کار من راجب آتیه من و اوضاع دنیا تازه در آن موقع قرارداد مونیخ بسته شده بود راجب جنگ و اینکه آلمان اختراعی کرده است که اگر تمام دنیا متحد شوند آنها را مغلوب خواهد کرد و اینکه جنگ نخواهد شد. رجبوف مخصوصاً اهمیت می‌داد به اینکه رژیم روسیه حتماً باید برهم بخورد. چرا کارخانه‌ها را از دست صاحبش گرفتند؟ چرا پنج تا خانه‌ای که او در باتکو به داشته است دیگر به او نمیدهند؟ خانه‌های او را ازش گرفتند. و مدرسه درست کردند. همان باغ پدری او امروز پرورشگاه کودکان شده است. تا دنیا دنیاست آقا و نوکر پولدار و گدا بوده و خواهد بود. از این گذشته از همه چیز بدترین که تجارت نیست؟ و مملکت بدون تجارت اش چیست؟ ترقی یک مملکت بسته به تمبول تجار آن است. یک نفر تاجر روس به من نشان بدهید؟ و چیزهای دیگر از این قبیل آن وقت مارگریتا دخالت کرد بابی چقدر راجع به سیاست صحبت میکنید من میخواستم کمی برای آقای فه پیانو بزنم شما اگر نمیخوایید بشنوید شد رنج بازی کنید ما با هم به اتاق مجاور رفتیم چون پیانو در آن اتاق بود اتاقی که در آن غذا خوردیم همان اتاقی بود که برای اولین دفعه من مارگریتا را دیدم اما در ما بین این دو اتاق باز بود به طوری که اگر کسی سر میزی ایستاده بود به آسانی میتوانست با ساکنین اتاق نهارخوری صحبت کند مارگریتا از من پرسید چه دوست دارید؟ موزیک آسان میخوایید یا مشکل؟ خجالت کشیدم بگویم که فرق ما بین این دو را نمیفهمم و خیال میکردم که مارگریتا مثل معمول منتظر جواب نمیشود. اما او که داشت نتها را ورق میزد، صبر کرد و گفت: «آخر یک چیزی بگویید؟ هرچه شما میل دارید؟ مگر موزیک دوست ندارید؟ چرا؟ خیلی. پدرش گفت: « چیز خوبی شادی بزن غم انگیز نباشد. رجبوف گفت، اگر بخواهد دنس مکبره را بزند من فرار می کنم. پرسید، رستی آقای فه، مکبره یعنی چه؟ من دست با چه شدم، گویی با خندش می مرا امتحان کند. مکبره یعنی شوم، مکبره یعنی وحشتناک، یعنی آن حالی که در مرد شورخانه ها، در قبرستان ها حکم فرماست، من نمی توانم ترجمه خوبی برای این کلمه پیدا کنم. مارگریتا گفت: "آه، آدم را ترس فرمیدارد. موزیکش هم همینطور است. رجبوف گفت: «من هم که همینطور گفتم. مارگریتا تون جواب داد: «نه، nah, شما این جور نمی گفتید. شما گفتید یک جوری و بعد بقیهش را با دستتان نشان دادید و من نفهمیدم. یک مشتخون پرید توی کله تازه رجباف. معلوم بود که در حضور من منتظر یک چنین حمله ای نبود بر من معلوم شد که مرگریتا او را دوست ندارد گویی دریافت این حقیقت مرا تسلی داد آن وقت مارگریتا پشت پیانو رفت و مدتی بنواخت حالت ملایم و مهربانی مرا فرا گرفت دلم میخواست تمام دنیا مثل من خوشبخت بود و از این دستهای لطیفی که با این وقار از این دستگاه مرموز این آهنگهای پرافزون در میآورد لذت میبرد دلم میخواست در چشمای مارگریتا اسرارش را میخواندم چه میزد نمیدانم اما آهنگها مرا سوزندند در دل من شعله میزدند خون من میجوشید و من خود را خوشبخت در این موجودات دنیا می‌دانستم.